به نام خدا سلام برامی هزار افثان امشب رو با گفته از مکسیم گورکی نویسنده ی معروف روسی درباره قصه آغاز میکنیم مکسیم گورکی میگه اعتراف میکنم که در جریان تکامل ذهنی من افسانهها ها نقش مثبت فراوانی داشتن به بخصوص هنگامی که اونها رو از زبان مادربزرگم یا قصه گویان دهکده میشنیدم افسانه ای رو که براتون نرم می کنیم، یه افسانه کردی به نام افسانه سخاهر برگرفته از کتاب افسانه ها نمایش نامه و بازی های کردی امیدواریم بشنوید و لذت ببرید روزی روزگاری در یک دهکده کوچک و آروم سه خواهر در کنار هم زندگی می‌کردند اونا از تمام مال و منال دنیا فقط یه آسیا به دستی یه نرد بوم و یه سک کوچولوی پاکوتا داشتن و اموراتشون به سختی میگذشت. روزی از روزها سه خواهر تصمیم گرفتن تا هر کدوم به دنبال سربش خودشون برن و بنابراین قرار گذاشتن تا هرچی دارن بین خودشون تقسیم کنند. خواهر بزرگتر که ادعای بزرگی می کرد آمرانه گفت برید کنار ببینم من اول باید انتخاب کنم بعد دستش رو دراز کرد و نردبوم چوبی رو برداشت و گفت من اینو ور میدارم و با غرور ادامه داد اونو به هر کسی بدم کارش رو انجام میده و یه لغم نون هم به من میده خواهر دومی به تندی جلو رفت و آسیاب دستی رو برداشت و اونم با غرور گفت با این آسیاب به دستی میتونم گندم های مردم رو آرد کنم و خرد و خودم رو تمین کنم. نوبت به خواهر کوچیکتر رسید. او که چاره جز قبول سگ کوچولوی پاکوتا نداشت جلو رفت و با مهربونی دستی بر سرگوش سگ کوچولو کشید و گفت منم این سگ پاکوتا رو بر خودم نگر میدارم. دو خواهر بزرگتر با تمسخور از خواهر کوچیکترشون پرسیدن <تصفح> تو با اون چیکار میکنی بپا از پرخوری نترکی خواهر کوچیکتر با امیدواری جواب داد <تصفح> ما از نمی نمیمیریم اگه تکه نونی گیرمون بیاد با هم تقسیم میکنیم و دو خواهر بزرگتر از شنیدن این حرف به خنده افتادن و دوباره با تمسخور گفتند <تصفح> قاتتون باشه گرسنگی رو هم با همدیگه تقسیم کنید باشه خواهر کوچیتر چیزی نگفت و سگ کوچولو به دست و پای دخترک پیچید و آهسته گفت به حرفهای اونا گوش نده من نمیذارم گرسنه بمونیم لحظه‌ای بعد هر کدوم از سه دختر به راهی رفتن دختر کچکتر و سگ پاکوتا رفتن و رفتن تا اینکه خسته و گرسنه به خرابهی رسیدن سگ پاکوتا به دختر گفت اجازه بده من یک گشتی این دورو برای بزنم شاید چیزی برای خوردن پیدا کنم دختر که از خستگی و گرسنگی نای حرف زدن نداشت سری تکون داد و گفت باشه زود برگرد خیلی زود سگ پاکوتا نومشو تکون داد و از دختر دور شد ساعتی بعد سگ پاکوتا در حالی که بخچه ای رو به دندون گرفته بود پیش دختر برگشت دختر با دیدن سگ پاکوتا خوشحال شد و جلو رفت و بخچه رو گرفت و اونو باز کرد بخچه پر بود از قضاهای جور و جور. دختر با تجب از سگ پاکوتا پرسید این, این قضاها رو از کجا آوردی؟ سگ پاکوتا جواب داد از آشپسخونه قصر پادشاه دختر با چشمانی شگفت زده پرسید قصر پادشاه؟ سگ پاکوتا جواب داد آره قصر پادشاه در همین نزدیکی ها دختر با نگرانی گفت آه باید خیلی مواظب باشی خیلی هردو با ولع شروع به خوردن کردند خلاصه تا مدت کارشون همین بود سگ پاکوتا با بخچه خالی به آشپزخانهی قصر پادشاه میرفت و با بخچه پر از خوراکی به نزد دختر برمیگشت تا اینکه بالاخره یه روز نوکران پادشاه متوجه ورود سگ پاکوتا به داخل آشپزخانه شدند و اونو زیر نظر گرفتن روز بعد سگ پاکوتا وارد آشپزخونه که شد بخچه رو باز کرد و مقداری خوراکی توی اون گذاشت و به اون گرفت و با سرعت خارج شد نوکران هم فوراً به پسر پادشاه خبر دادن که قربان قربان باید به عرضتون برسونیم که مدت زیادیه که یه سگ پاکوتا پنهونی به آشپزخونه قصر شما وارد میشه و مقداری خوراکی توی بخچه میذاره و فوراً از قصد خارج میشه قربان پسر پادشا با تعجب پرسید یه سگ پاکوتا؟ مطمئن؟ نوکران حاضر جواب یک صدا گفتن بله قربان ما با چشمهای خودمون دیدیم پسر پادشا پرسید خب کجا میره؟ این خوراکیه رو برای چه کسی میبره؟ به بعد دستور داد از فردا اونو تعقیب کنید خیلی دلم میخواد بدونم که این سگ پاکوتا کجا میره و این خوراکیه رو چیکار میکنه بعد سری موند و گفت: حتما رازی راضی دار این کار وجود داره." بعد صداش بلند کرد و رو به نوکرایی که به دور اون حلقه زده بودند گفتن: "برید کنار. بذارید هوا بیاد تو." و نوکران تعظیم کنن از حضور پسر پادشاه مرخص شدند. Thank mm -hmm. you. فردای اون روز نوکران در گوشه ای از قصر پنهان شدن و منتظر اومدن سگ پاکوتا موندن نزدیکی های سگ پاکوتا مثل هر روز بخچه به دندون آروم و بی وارد قصر شد بعد با احتیاط نگاهی به اطراف انداخت و در یه چشم به هم زدن خودشو به آشپزخونه قصر رسوند و چند لحظه بعد هم با بخچه پر از غذا از قصر خارج شد نوکران هم پاورچین و پاورچین تا نزدیکیای خرابه اونو دنبال کردند و در این لحظه متوجه دختر شدند که در گوشه آروم و قمگین نشسته بود. نوکرا فوراً به قصد گشتن و هر دیده بودن برای پسر پادشاه تعریف کردند. پسر پادشاه که کنجکاف شده بود تصمیم گرفت خودش سگ پاکوتا رو تحریب کنه. فردای اون روز به محض اینکه سگ پاکوتا با بخچه پر از خوراکی از قصر خارج شد پسر پادشاه به دنبال اون براه افتاد. سگ پاکوتا وارد خرابه شد. پسر پادشاه در کنار خرابه ایستاد. وقتی چشش به دختر افتاد با خودش گفت آه خدای من چه دختر زیبا و معصومی. اینجا چیکار کار بعد پسر پادشاه با لحن دل سوزانهی زیر لب گفت بیچاره چه لباسای پارو کونهی بتن داره دختره که بیچاره و دلش برای اون سوخت و طاقت نیاورد و به آرومی به اونها نزدیک شد و زیر لب سلامی کرد سلام دختر و سگ پاکوتا با تعجب نگاش کردند فورا رنگ چهره دختر تغییر کرد پسر پادشاه که متوجه ترس و نگرانی اونها شده بود با لحن مهربونی گفت نترسید نترسید من من با شما کاری ندارم فقط میخوام بدونم شما کی هستید و اینجا چیکار میکنین دختر هم ماجرای زندگیشو برای پسر پادشاه تعریف کرد پسر پادشاه هم خودشو به دختر معرفی کرد و چون مهر دختر به دلش نشسته بود همونجا از دختر خواستکاری کرد دخترم پذیرفت و گفت من من به این وسلت راضیم فقط فقط یه شرط دارم پسر پادشاه پرسید خب چه شرطی؟ هرچی باشه میپذیرم دختر سگ پاکوتار رو در آغوش گرفت و گفت شرط من اینی که این سگ پاکوتا همراه من به قصر بیاد و در کنار ما زندگی کنه پسر پادشاه این شرط رو پذیرفت و همگی به قصر پادشاه رفته و ساعتی بعد پادشاه و همسرش ملکه دستور دادن تمام مردم شهر در جشن عروسی پسرشون شرکت کنن و تمام گوش و کنار شهر رو چراغونی کنن و بدین ترتیب دختر به عقد پسر پادشاه در اومد اما, اما. قربتی گذشت و کم کم زخم زبونهای اطرافیان شروع شد آی دختر تو چه عروسی هستی که هیچ کسو کاری نداری ها؟ ببینم پدر داری؟ مادر چی؟ من که میگم این دختره کولیزاده شایدم قربتی بشه بیچاره بیچاره بیچاره پسر پادشا چه عاقبتی نصیبش شده و دختر برای هیچ کدوم از این زخم زبونها جوابی جز سکوت و گریه نداشت. و در این میون تنها سگ پاکوتاه بود که دختر رو دلداری میداد و آرومش میکرد و بالاخره هم یه روز رو کرد به دختر و گفت خسته نخور خسته نخور من میرم و با کاری می و کاری پیدا میکنم و برمیکردم دختر با تعجب پرسید چه من که کس و کاری ندارم؟ سگ پاکوتا گفت تو کاریت نباشه فقط تا من برمی گردم هر چند دقیقه یک بار روی پشت بوم برو دختر باز هم با تعجب پرسید روی پشت بوم؟ برای چی؟ و سگ پاکوتا باز هم جواب داد تو کاریت نباشه هرچی چی گفتم انجام بده دختر پرسید خب... اگه پرسیدن من اون بالا چیکار کار میکنم چی بگم؟ سگ پاکوتا به تندی جواب داد بگو چشم راه برادرام هستم اونا قراره به دیدنم بیان و دلم داره شروع اونا رو میزنه سگ پاکوتا اینا رو گفت و از دختر خداحافظی کرد و از خارج خارج. شب هنگام سگ پاکوتا وارد روستایی شد و به اولین خونه که رسید داخل اون شد و خودشو در گوشه ای پنهون کرد صبح زود دید که هفت پسر از خواب بیدار شدن و یک به یک سبد بزرگی که روی تختی چوبی گذاشته شده بود بوسیدن و بعد لباس شکار پوشیدن و از خونه خارج شدند سگ پاکوتا جلو رفت و سبد رو برانداز کرد توی سبد پیرزنی رنگ پریده و مریض احوال نشسته بود که نفسهای آخر عمرش رو می کشید و در حال مرگ بود. چند لحظه بعد هم پیرزن از دنیا رفت. در این موقع سگ پاکوتا فکری به خاطرش رسید. فوراً خودشو توی سبد پیرزن مرد جا داد و منتظر اومدن پسرهای پیرزن شد. ساعتی بعد پسرهای پیرزن از شکار برگشتن و به محض ورود باز هم یک به یک برای مادرشون به ثبت نزدیک شدن. در این لحظه سگ پاکوتا صداشو تغییر داد و گفت پسرای عزیزم صبر کنین من دیگه دارم نفسهای آخرم و میکشم و فقط یه آرزو دارم. پسرها یک صدا پرسیدن چه آرزوی مادر جان؟ سگ پاکوتا باز هم صداشو تغییر داد و گفت آرزو دارم که به سراغ تنها خواهرتون که زن پسر پادشاهه برین و احوالشو بپرسین تا پیش فامیل و اقوام شوهرش سرفگنده نشه و اونا خیال نکنن که اون بیکس و کاره پسرها از شنیدن این حرف با تعجب به هم نگاهی کردن و با ناراحتی گفتن مادر جان چرا هیچ وقت به ما نگفتی ما یه خواهر داریم سگ پاکوتا باز هم صداش شد تغییر داد و گفت خوب حالا که گفتم از این به بعد وظیفه شماست که به دیدن خواهرتون برید این کارو میکنین؟ قول میدین؟ و پسرها قول دادن که همین فردا به دیدن خواهرشون برن و خیال سگ پاکوتا با شنیدن این حرف پسرها راحت شد دختر روی پشت بوم به انتظار سگ پاکوتا چشم برای ایستاده بود که از دور چشمش به سگ پاکوتا افتاد که به اتفاق چند نفر داره نزدیک و نزدیک میشه دختر با خوشحالی و دست پاچگی به سراغ شوهرش که همان پسر پادشاه بود رفت و خبر داد پاشو پاشو برادرمون دارن میان اینجا پاشو پسر پادشاه با شنیدن این حرف دستور داد تا جلوی پای اونها چند گاو و گوسفند رو قربانی کنند و به بهترین نف از اونا پذیرایی کنن برادرها چند روز مهمون خواهرشون بودند و بعد به خونهشون برگشتن چند روزی از این ماجرا که گذشت سگ پاکوتا پیش خودش فکر کرد خاب حالا دیگه وقتشه که این دختر رو امتحان کنم و ببینم تا چند آز خط شناسه و قدر زحمات منو میدونه و بعد برای امتحان کردن دختر کنار حوض قصر افتاد و خودش رو به مردن زد. نوکران هم فورا خبر مردن سگ پاکوتا رو به دختر دادن. دختر بالای سر سگ پاکوتا که رسید با بی اهمیتی لگدی به پهلوی اون زد و گفته. فورا دومش رو از قصر بندازینش بیرون. سگ پاکوتا که این حرف رو شنید تاقت نیاورد و آروم تکونی به خودش داد و توی صورت دختر زلزد و گفت ای دختر بیوفا و قدر نشناس اینه جواب اون هم زحمتی که برای تو کشیدم بعد بلند شد که از قصر خارج بشه ولی دختر که از رفتار خودش شرمنده شده بود به گریه افتاد و سگ پاکوتا اصخایی کرد و از اون خواست که قصر رو ترک نکنه سگ پاکوتا هم که شمساری و اصرار دختر رو دید پذیرفت و در قصر مود بعد از چند روز سگ پاکوتا بیمار شد و روز به روز حالش بد و بدتر شد. دختر در این مدت لحظه ای اونو تنها نمی و مدام مراقب اون بود و بالاخره روز مرگ سگ پاکوتا فرار رسید و سگ پاکوتا از دنیا رفت و دختر رو تنها گذاشت. دختر در مرگ سگ پاکوتا شیون کرد بعد اونو با صابون گل شست و لای پنبه گذاشت و دور از چشم شوهرش توی صندوقچهای پنهون کرد و درش رو قفل کرد روزها گذشت ولی دختر هنوز بیاد سگ پاکوتاه بود و احساس تنهایی میکرد تا اینکه روزی پسر پادشا کلید صندوقچه را از دختر خواست دختر که می ترسید شوهرش از وجود سگ پاکوتا با خبر بشه برای باز کردن در صندوقچه بحانه ها ولی شوهرش همچنان اصرار داشت که در صندوقچه رو باز کنه و دختر مجبور شد که کلید صندوقچه رو به شوهرش بده. پسر پادشا در صندوقچه رو که باز کردید که یه مجسمه یه سگ طلایی توی صندوقچه قرار داره. با تعجب هستنش پرسید این این سگ طلایی مالی کیه؟ خیلی با ارزشه. دختر که متوجه فداکاری سگ پاکوتا شده بود بغزش ترکید و با گریه گفت این, این سگ طلایی رو برادران برام سوقت آوردن. و از اون روز به بعد دختر پیش شوهرش آبرومندی و سربلندی بیشتری پیدا کرد. و همیشه وفاداری و زحمات سگ پاکوتا رو در نظر داشت و یاد و خاطری اونو تا ابد توی قلبش زنده میکرد داشت. یه کردیه سخاهر رو براتون نقل کردم در بین افسانه های ایرانی افسانه های بومی حال و هوای دیگه دارن در اونها میشه به فرهنگ بومی و آداب و رسوم اون منطقهم پی برد این در کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالپور اجرا مهران دوستی صدابردار داریوش گودرزی و تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افثانی دیگر بدرود